در ویشی را شنیدم که به غاری در نشسته بود و در به از جهانیان بسته و ملوک و اغنیا را در چشم حمت او شوکت و حقبت نمانده، هر که خود در سؤال گشاد تا بمیرد نیازمند بود، آز بگذار و پادشاهی کن، گردن بیتمع بلند بود یکی از ملوک آن طرف اشارت کرد که توقع به کرم اخلاق مردان چنین است که به نمک با ما موافقت کنند شیخ رضا داد به حکمان که اجابت دعوت سنت است دیگر روز ملک به عذر قدومش رفت آبد از جای برخواست و ملک را در کنار گرفت و تلطف کرد و سنا گفت، چون قایب شد، یکی از اصحاب پرسید شیخ را که چندین ملاتفت امروز که با پادشاه و کردی خلاف عادت بود و دیگر ندیدیم گفت نشنیدی که گفتند هر را بر سمات بنشستی واجب آمد به خدمتش برخاست گوش تواند که همه عمروی نشنود آواز دف و چنگ و نی. دیده شکیبت ز تماشای باغ بی گل و نسلین به سرارت دماغ. ور نبود بالش آکند پر خواب توان کرد خذف زیر سر. ور نبود دلبر هم خواب پیش دست توان کرد. در آغوش خیش وین شکم بی هنره پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد بهی به